چو تو دینی یعنی چی؟ مالی یعنی چقدر مشتری تو وابسته است به پول. ببین یه وقتی تو صنعت غذای داری فعالیت میکن مثلا رستوران داری. کیسا که میان غذا میخرن، میان تو رستوران غذا میخورن چه پول داشته باشن، چه نداشته باشن، چه وضعیت مملکت خراب بشه، چه خوب باشه، چه اقتصاد بالا بره؟, بره، ما ایرانی ها به شکممون می‌رسیم. پس این شرط میگه با ثبات مالی ثابت؟ خوب یا بالاست یا ثباط مالی بالاست خوب ولی تو صنعت ما اگر اقتصاد خراب بشه تحریما افزایش پیدا کنه قیمت نفت الان از بشه چیدونم بالای دلار شده چل دلار خوب قدرت خرید مشتری کاهش پیدا میکنه مثل مسکن. به نوعی مث مسکن و این تأثیر میذاره تو شرکت ما پس در صنعتی که ما داریم فعالیت میکنیم ثبات مالی کمه بالا نیست یعنی زیاد نمیتونی اعتماد بکنی. خب سوال بعدی فنون تخصصی تو صنعت ما اگر تو هر صنعتی اگه فنون تخصصی ساده باشه عدد بالاتر رو میگیره. اگه فنون تخصصی پیچیده باشه عدد مظرا میگم. اگه ساده باشه عدد بالاتر رو میگیره. اگه پیچیده باشه پاینتای اگه پیچیده باشه عدد بالاتر رو میگیره. تو صنعتی که ما داریم تولید کالا و خدمات می‌کنیم فنون تخصصی پیچیده است. پس عدد بالاتری رو میگیره و خوبه برای ما چون هر شرکتی نمیتونه وارد حوزه رقابت با ما باشه از دانش دانش که تو صنعت وجود داره آه دانش بده چیه به واسه من به مراته نفت جنوب تولید کالا میکنم و تحویل میدم خب اینی که شما تو این شرکت بخوای کار بکنی باید اون سازمان و بشناسی اون صنعتو بشناسی یه قطه خیلی ساده من دارم تولید میکنم متوجه ای؟ ولی باید اون صنعتو رو بشناسی متوجه ای؟ تا بتونیم قطعه رو تولید بکنی اگه نشناسی نمیتونیم قطعه رو تولید بکنی من این مثال براتون بزنم این قطعه رو تولید کرده. ده کن. کنیم دو هفته پیش هم ارسال کردیم برای مشتری قطعه خب می‌بینی؟ خیلی ساده، است. یه فلزی متوجه؟ خیلی ساده. ابزاشم در چمدان. هیچ چیزی نمی‌کوچلو فلزی. خب؟ 500 تا از تا تولی، 500 تا از تا توله تقریباً تخمین بزن. می‌بینی؟ همین یه فلزیه متوجه؟, در خب؟ خب؟ ده ده. یه رینگ فلزیه متوجه درسته؟ می‌بینی؟ همین یه رینگ فلزیه ساده 500 تا از 500 تا قطعه هلالی مثلا این داکترش چه اسم کاوچیه 500 تا از قطعه قیمتش یک میلیارد و 500 میلیون تومانه خب من روز اول که این قچه دیدم یعنی من که در حقیقت کارشناس فنی‌مو و قیمت دادیم به مشتری گفتیم یک میلیارد و 500 میلیون تومان چهار شاخمو و آقا فلان شرکت اومده تو اهواز قیمت داده پنجاه میلیون تومان تو چی میگی میلیارد و 500 میلیون تومان؟ و چیکار وقت دوست عزیز این جینگ فلدیش ای که ماشین کاری ساده در میاد این هر شرکت هم میتونه تولید کنه مهم متریال داخلشه کاچو <تصفح> این کاچو جنسش مثل کاچو میمونه این جنسو بهش میگم فلورزنت 500 خب تو بازار مشابه این جنس شما میتونه پیدا کنید که مثلا برای 500 تا قته ما یه چیزی حدود 500 کیلو 400 کیلو میخواستیم تو بازار بود مثلا حدود 5 میلیون 4 میلیون مشابه ولی این جنس جنسش فلوریزنت 500 به انبساط حرارتیش فوق‌الاده پایینه بعضا فوق‌الاده بالاست فوق‌الاده بالاست خب و در انحصار فقط یک شرکت در دنیا به نام کواندروم آمریکا خب ما 400 کیلو از این جنس خریداری کردیم 400 کیلو از این کاوچو از کوان روم امریکا از طریق یه نمایندگی از هندوستان وارد کردیم فکر کنید چقدر؟ 600 هزار دلار. مذارب میخوام ببخشید 250 هزار دولار والا وارد کرده اطلاق واسطه اونها وارد کرده 250 هزار دولار فقط این جنس را ها؟ و میگن یه متریال پتر هستن یه متریال خاصه اختراعی شده در انحصار یه شرکت در آمریکا با نام کوانچو خوب اینا یک تعمیر کننده زیر پله‌ای میاد جینزو میسازه با 50 میلیون تومن تحویل میده به مشتری میاره تو دستگاه کار نصب می‌کنه زریبه انبساد حرارتیش بعد خیلی بالا باشه زریبه انبساد حرارتی پایین کاچو از پته جدا میشه میزن دست رو بیچاره می‌کنه یه هفته باید. چی یه هفته باید. یعنی چه یه هفته برای؟ هم روزی که نهنده خواهم یه <تصفيق> هفته، ظرف یک ساعت یک <تصفيق> ساعت <تصفيق> سی دقیقه بعد دستگاه اینا بحث داره، مثلا اینا میره رو تجهیزات نفت و گاز کارون میشینه خب، نفت و گاز کارون که خوب اکثر نفت و گاز کشور، موله نفت و گاز کارونه یه دستگاه اینا یه افعا آت سرویس بشه، اصلا بحثه امنیتی اطلاعاتی داره یعنی که حالا مثلا مشتری ناراضی بشه زنگ بزنه تا آقا قطعه که به من تحویل دادی ال بوده بل بوده طبانی. یه دفعه یه دفعه یک کمپرسور بخوابه متفلر تو اون فلر گاز میره بالا مثلا بحثه سیسموتی پیدا میکنه چه منا تولید نفت متوقف میشه اصلا هزار جور داستان داره اینجوری نیستش که آقا. اینو ما بهش فنون تخصصی فنون تخصصی در صنعتی که شما دارید تولید کالا و خدمات میکنید پیچیده باشه تو نمره بالاتری رو میگیری متوجه ای؟ چرا؟ چون هر رقیبی به راحتی نمیتونه با تو بیاد وارد حوزه رقابت بشه استاد من یه سال برم بیش این واقعیت یا ها؟ چون هر رقیبی به راحتی نمیتونه با تو بیاد وارد حوزه رقابت بشه این مزید از رقابتی میشه یا افران همیشه بیش از مزیت رقابتی. مزید رقابتی یاره یه قسمتا هم ازت رقابتیه. بس این فونو تخصصی اومده اینجا چجاست؟ من ثبت نام کردم. پس جزوات صنعت هم میتونه زیر مجموعه مزیت رقابتی بله بله بله بله. مزیت بله مجه مزیت رقابتی. ببخشید. رمب... این یعنی چقدر سرعتی که تو داری تولید کالا و خدمات می‌کنی اون صنعت جذابه. سرعتی که تو داری تولید کالا و خدمات و پیشیده تر باشه بهتره دیگه. بذار یه مثال برات بخونم. تو الان MBA رو مساسه اصل و شبکه داری میتونیم میتونی تو هاروارد بینس اسکول بخونی. هاروارد بزینس اسکول وقتی MBA میکنی ما میگیم جذابیتش بالاتره دیگه چرا جذابیش بالاتره؟ چ سختره چ پیچیده تره چون اگه فارغ تحثیر بشه اون مدرک خیلی ارزش داره یه واقعیتیه خب وارد شدن به اون اسکول فوق ال سخته. اینکه اون اسکول تو بتونی گریجوییت بشی، فارغ تحصیل بشی، او داستان داره. ام در هاروارد بیزنس اسکول، توشن فیش یعنی شهریه‌اش 150000 دلاره این نصيب به 500 میلیون تومان. همین حالا شما اگه بریم هاروارد ام بخونی، 500 میلیون تومان شهریه یک ساعت. به غیر از هزینه زندگی و غیره و زاله. و خیلی هم سخته. اینجوری هم نیست. که مدیریت استراتژیک اونجا پورتر درس نه آیمان صدرانی. آره، مارکل پورتر بزنس بعده بزنس یونیکس بله، پورتر استاد بله، استاد مدیریت، است، پروفسور مدیریت استراتژی که هاروارد بزنس اونجا پورتر درس میده. خب مسلماً ارزشه. خیلی هم سخته درس خوندن، روی ساده نیست. ولی خب ارزش داره. این واقعیه. حالا چیز نیست تا حیغات این یه مثال من دارم خدمت شما میذارم حالا تو سرعتی شما دارید تولید کالا و خدمات هر چقدر سرعت تر باشه خب ارزش بالاتری داره دیگه برای تولید غیر از گیری منابع خب تو سرعتی که شما دارید تولید کالا و خدمات میکنی چقدر میتونی منابع رو به کار ببریم منابع که میگم یعنی چی یعنی منابع تأمین کنندگان مواد اولیه، تجهیزات خب هرچقدر راحت‌تر شما منابع بتونی به کار بگیری خب عدد بالاتر می‌گیره و هرچقدر منابعی که دسترسی بهشتری سخت‌تر باشه عدد پایین‌تری رو می‌گیره سهولت ورود به بازار تو سنتی شما داری تولید و کالا و خدمات می‌کنیم آیا به آسانی وارد شدی و به آسانی تولید و کالا و خدمات کردی؟ چه و شما که ظرف چهار ماه ضرر کردی سهولت ورود ببینیم ورود به بازارش آسونه چه مساده میدونن؟ اگر تو صنعتی که شما داره تولید کالا و خدمات رو با ورود به بازار سخت باشه یعنی چگه هر کسی نمیتونه به راعدی وارد وزهو رق با شرکت شما بشه بعد اگر سهولت ورود به بازار آسان باشه عدده رو میگیره و اگر دشوار باشه عدده بالاتری رو میگیره این خیلی جالبه شماره هفت. بهرورری صنعت به صنعت بهرهوری فرق می‌کنه صنعت و صنعت بهرهوری فرق میکنه به می‌دونه می یعنی چی؟ بهرهوری یعنی چی؟ نسبت بروجه بروجه. نه خیلی لوری ما هم صحبت کنیم عملیاتی ساده چند تا سرمایه گذاشتیم داریم یه تولید نسبت اون سرمایه که گذاشیم، پولی که گذاشیم، چقدر داریم و پول به میاریم. که به تا که می‌کنیم گردشگری ها خب مدیریت میکنیم یه ما هست در شرکت من می‌خواییم مدیریت کنیم که هشتاد درست ها مهندس خب مدیریت در سازمان من دیگه درسته؟ نیروی انسانی نشسته zoom زده رو کامپیوتر این تضییع هزار بار برای من اتفاق افتاده بهش چی کار می‌کنی من دارم تحقیق میکنم حالا تو بیا ثابت کن که این آقا یا خانم تحقیق نمی‌کنه پیجای مختلفو داره باز می‌کنه باحال منو ویب گردی میکنه بیا ثابت کنید علی که داره انسانی کتاب جلوش بازه داره حالا مثلا درس می‌خونه یه غلط دیگه داره می‌کنه میگه چیکار نمی‌کنی من دارم تحقیق میکنم برای پروژه. حالا تو بیا ثابت که چرا مثلا داستان سیندرلا نمیخونه، داره تحقیق کنه بهرلدی تو شرکت ما پایینه هر کاریشگیره خیلی سخت افضاشی بهرلدی تو سازمان ما ولی توی گردش گردشگری که نفر مثلا او خانمایی که اونجا نشستن مدیر آژانس ما شاهده که خانم تو تا آخره، اسفلما تور آنتالیا رو بعد ببندی من نمیدونم، بعد ببندی و میفهمه که از صبح تا شب این خانم داره کار می‌کنه. کارش فقط زنگ زدن حرف زدن. هر چقدر بیشتر زنگ می‌زنه، بیشتر حرف بزنه، ادل بیشتر کار میکنه دیگه. اگه نشسته باشه این کار نمیکنه به همین سادگی. یا تو شیرینی فروشی، شما بهره‌وری نیروتو بالا می‌بری، سادافت باهندازی می‌کنی. داره وقت داره خمیر میزنه از صبح تا شب. و داره کار میکنه دیگه. دیگه تو سیستم شما بحث اینترنت و خوندن کتاب و غیره و زالک نیست. یا وقت رعایت کارخونه من تو دفترم نشسته بودم از بالا داشتم نگاه میکردم دیدم یه مدیر برنامه‌ریزیه خیلی جوونه جونور بود بالا من انداختمش بیرون در این نیم ساعت واسه داره سیگار میکشه همین هی آتیش و آتیش خب نه داره نگاه میکنه تامو نکردم اومدم پای گفتم چیکار داری میکنی اومدم فکر کردم فوش دادم بهش گفتم تو غلط کردی داری فکر میکنی تو دفترت آه؟ ولی بعد مراهاتو خود. آقا من دارم فکر میکنم چرا مثلا توهین می‌کنی؟ یا اینا گفتم برو تو دفتر دارم، ندارم بعد دفته پشتنم، تو من داشتم فکر میکردم فرایلی نزایش من فکر کنم، پس برایل خب، حالا تو بیا ثابت کن این آقا، واقعاً داشته فکر میکرده یا فکر نمی‌کرده یا داشته به تو سخترش فکر می‌کرده اینجا ما میگیم آقا ‌ه <تصفيق> <تصفيق> چه فکری می این مهم ه صنعت به صنعت متفاوته تو بعضی از صنعت بابا پایینه در نتیجه اداز پایین تنه. تو بعضی سنعت بعمقی elinمهatterی هم بالان، در نتیجه اداز بامتال yes هرچقدر صناعی سختر،پیچیده تر،تخصصیتر باشه بهروری پایین تر هرچقدر صناعی بالاتر باشه مزرد میخوام تخصصش پایین تر باشه ساده تر باشه، بهر و شماره هشت جالبه، دوستان قدرت چانه تولید کننده شما تو سرعتی که داره تولید کالا و خدمات میکنه، قدرت چانه زنی در مقابل مشتری و تعمی کننده بالاست یا پایینه؟ ببین تولید کننده از یه طرف تعمی کننده بهت فشار میاره، درست یا نه؟ آه؟ باید. از یه طرف؟ مشتری تو که من دارم تولید کارا و خدمات میکنم با مشتری من دولتیه تعمی کنندم هم دولتیه پس اتوماتیکی قدرت چانزنی من پایینه درسته و الان ماسسه عاصل شبکه و شما قدرت چ شما در مقابل موسسه اصل شبکه در را بالاست چ شما دوستان داشته باشی اینجا درس بخوره شیفت میکنی میری یه موسسه دیگه بر ایننه تعم کننده میاصل این ندارم که بخواابش فشار بیاره پس سرعت به سرعت قدرت چانه فرق می‌کنه هر چان قدرت چانه شما پایین‌تر باشه، عدد باشه، پایین‌تر بچه باشه عدد بالاتر می‌گیره متوجه شد داستان چی شد؟ آره؟ آه. پس آیتم بعدی جذابیت سرعت جذابیت سرعت کدوم معلف است؟ X مثبت خیلی ساده ما نمره می‌دیم خب تو شرکت ما پتانسیل رشد از یک تا 6 بخوام نمره بدم از یک تا 6 پتانسیل رشد بالاست شماره 5و میدم پتانسیل سوداوری تو سازمان ما از یک تا 6 میخوام نمره بدم عدد 5 میدم ثبات مالی تو سازمان ما تو سلعتی که ما در و خدمات میکنه از 1 تا 6 نمره 1 دو رو میدم یا با شما 1و میدم حالا دو دادم فنون تخصصی بالا پ میدم به کارگیری منابع تو سازمان ما خیلی داستان داره س عدد دور رو میدم. سهولت ورود بازار بالا سوع سخته هر کسی نمیتونه به راحتی وارد حوزه رقابت با شرکت ما بشه از یک تا چیش بخوام نمره بدم عدد پ میدم. بربر پارت یک قدرت جان زنی پرت ایه. یک اوج این عدداد چند میشه اوریجش ببین؟ اولیجش رو بخواییم بگیریم میشه سه و, و جذابیت صنعت تو سازمان ما متوسطه متوسطه یه سنعت متوسطه جذابیتش متوسطه خیلی بالا روش خیلی پایین هم داستان چی شد؟ آره؟ بریم بود چهارم بریم بود چهارم نه نه بود چهارم چی بود؟ ثبات؟ محیطی محیطی Y منفی, y منفی. <تصفيق> دوستان، ثبات محیط یعنی یه چی؟ وقتی میگم ثبات محیطی ایرانا یعنی ایران ها یعنی از صنعت من عامل بود قبلی، ثبات صنعت بود یا جذابیت صنعت بودین یعنی در صنعت شما به طور بکاره و خدمات میکنیم الان وارد محیط شدیم، یعنی بالاتر از سر عدینه کل کشور رو در نظر بگیم در کشور ایران، تغییرات تکنولوژیکی پایین یا بالاست؟ باید. اگر پایین باشه، عدد بالاتر، اگر بالا باشه، عدد تر میگیره تغییرات تکنولوژیکی در ایران پایینه یا بالاست؟ بالاست؟ پایینه پایینه هسته باز این هم سنده که سنده نه نه نه نه شون کل کشور در نظر هستیم کل کشور در نظر بگیر تغییرات تکنولوژیکی اگه زیاد باشه یعنی چی؟ یعنی تکنولوژی روز به روز در حال عوض شدنه هی عبدو دیت شدنه در ایران بالا تغییرات تکنولوژی پایین نیست در ایران بالا تغییرات تکنولوژیکی تا ایران خیلی یعنی ما ایرانی از نظر فرهنگی تکنولوژی اورینتد هستیم. آره نمونه اینه که همه اپل دستشون و وایبر و واتس اپ و بدون ضعف یک سال می‌بینی این قضیه اصلا فرهنگ شد تو ایران. تاخيرات تکنولوژیکی در ایران خیلی بالاست. خب؟ خب هر چقدر بالاتر باشه عدد پوینت رو می‌گیره. چرا عدد پوینت تر می‌گیره؟ چون چرا چرا؟ منفی تاثیر عاسیر من هیچ مشکلی چرا؟ چا. شما مش مسائل کنالی. نه، کمای. جو تحولات تکنولوژیک سریع اتفاق میفته تو ایران، خب، جایگزین میشه. حجم رقابت افزایش پیدا میکنه. انتظارات مشتری روز به روز تغییر پیدا میکنه. یا به عبارت ساده‌تر رقابت سنگین‌تر میشه. خب نرخه تورم تو اینا پایینه یا بالاست بالاست بالاست. پس عدد پایین تری رو میگیره تغییر پذیر یا تغاظا؟ بازم بالاست تغاظا یعنی چی؟ یعنی تغاظا بود پریبی تغاظا عرضه اون تغاظا ریگه هر چیزی یه تغاظه نیاز به وجود اون کالا یا خدمات میشه دیگه نیاز فکری مشتنی هست باست... بشه, داره بشه. داره باستن باستن... تعریف تقاضا تقاضا مساویس با وانت به علاوه پول درسته یا نه؟ به. ما وقتی میگیم تغییر پذیری تغاظا یعنی پول حکم زیاد بشه تو جامعه ایران همین جوریه. به خاطر مشکلات اقتصادی و سیاسی پول یا جریان نقل مدام در ایران بالا پایین کشه دیگه درست یا نه؟ پس تغییر پذیری تغاظا در ایران چیه؟ کمی یا زیاده زیاده تغییرش زیاده، فلکشویشنش زیاده در ایران پس عدد پایین تر میگیره درسته؟ حال متوجه نشده، شما؟ نه، این نوع صحابت است. صحابت است. یعنی برای همه صناعتون داریم، ثابت داریم نه نکنم، ارتباط مستقیمی با پول داره درسته؟ در ایران به دلیل مشکلات نقدینگی اقتصادی، سیاسی متوجه تحریم و با با با، خیلی چیزهای دیگه پول مدام لاکچویت میشه دیگه درست یه مقطعی پول بالاست یه مقطعی پایینه یه مقطعی بالا یه مقطعی پایینه چرا همه شما چش‌پاسید به توافقات پنج برابر یک چون میخواد جریان نقدینگی تو ایران بره بالا دیگه الان اره یه مطلب شما وابسته بنفستید نفشو بشکه 40 دلار پس پول کم شد تو ایران پول کم و زیاد میشه پس تقاضا هم کم و زیاد میشه متوجه هستی آره تغییر پذیری تقاضا در ایران سیاستی که مثلا پای تل میگیره موانع ورود به بازار در بازار ایران موانع ورود به بازار در بازار ایران وقتی شما وارد یک کسب و کار میخوای بشی راحته یا آسونه راحته یا سخته با راحته سخت؟ سخته مجوز نیست آسان است نه ما در ایران کلی ده به معنای خیلی کلی نگاه میکنن صنعت و صنعت نگاهو خیلی کلی کلی شامل تره راحت همی که هم میخواست کنیم آفرین، راحته. فقط راه پیدا کن پت تغیر پذیریت چیز، موانه ورود بازار در ایران راحت کمه، عدد پایینتر رو به خودش اختصاص میده درسته؟ هم کمه عدد بازاری میتوشت چکریستا نگاه کن اگر موانع ورود بازار در ایران پایین باشه عدد پایینتری رو به خودش اختصاص میده و درست هست چرا چون شما تو هر صنعتی که وارد میشه شه هر چقدرم که اون صنعت سخت و پیچیده باشه شرکت های دیگه به هر طریقی میون وارد حوزه رقابت شما میشه بیا کسب و کار شما روانشناسی بلافاصله می بینین کنار وسط ما این سه تا متوجه شدیم که چطوری شدش هر عیب کوچیکی باشه تا پرزله تقاضا اگه کم باشه یعنی تقاضای بالا پایین نشه یه خط مستقیمی داشته باشه تو به عنوان یک کسی که کسب و کاری داری میتونی تقاضا رو در بازار پیش بینی بکنی. متوجه شی؟ بله اگه تکازهای مدام تغییر پذیر باشه یا تغییر پذیری زیاد باشه و شما خوب نیشن پیش بینی سخت میشه. و اینجا ما میگیم اگه تغییر پذیری تکازه زیاد باشه عدد پایین تری. عکت بعدی، فشار رقابتی در ایران پایین یا بالاست. فشار راه خیلی پایین فشار راه پایینشه بالا اگه که پیشترف کرده بودی راست <تصفح> میگی جدی دارم بهت میگم ببین تا فهمم آره من نمیذارم من... اشت... چون ما هنوز در ایران فشار رقابت در ایران فشار رقابت خیلی اتفاقا پایینه بالا نیست و مثلا تفا... فرهنگی اصال خیلی هم به فرهنگ هم به زیرساخت برمیگرده یعنی شما در آمریکا اقتصاد آزاد نداره نه در امریکا نه میخوام بگم فشار رقابت سنگینه تو همه حوزه یه نفری که داره در یه سازمان کار میکنه ها دو دستی میچسبه به اون شرکتی که داره کار میکنه دو دستی میچسبه به دست آره چون رقابت سنگینه یعنی یکی یک روز یک لحظه راندمان اونی رو بیاد پایین کارفرما میگه برو نفر بعدی بیاد چون پشت در خیلی بااستاد و منتظر این کار هستن ای واقعیتی ها شرکت ها هم همین جوری هستن ما حجم رقابت زیاد اون سئی نیست معنی تو هر بازاری که میخوام وارد بشم اگه رقابتی هم باشه روش‌های اختراتخاکی رو ما پیدا میکنیم اون رقابت خنثی می‌کنیم این جدی دارم میگم رقابت خنثی میکن از حالا یا از طریق خرید مشتریه یا از طریق دادن یا از طرق مختلف ولی این در کشورهای پیشرفته اینجوری نیست پس ببین. اگر فشار رقابتی پایین باشه عدد بالاتر رو میگه بالاخره خوبه دیگه برای کس و کار برای اینکه که ما میگیم تو ایران پول درآوردن راحت، راحته این توی زبان آمیانه هستیم میگن آقا، پول درآوردن در ایران مثل خارج از کشور سخت نیست در خارج از کشور پول در آوردن بسیار سخته من کار کردم، میدونم، خیلی سخته یعنی زرف اصاب میگیریم این این واقعیت چیه حالا کسانی که حالا مهاجرت کردن بخواد دیگه مجبورن ولی الان اگر اونایی که مهاجرت کردن به آمریکا، اروپا، کانادا یا کشورهای دیگه خب دارن کار میکنن بعد دیگه زندگیشون رو بستر مهاجرت کردن دیگه نمیتونن برگردن به ایران ولی یه عاملی که همیشه باعث نارضایتی اینهاست ترس از فرداست از فردا واقعا میترسن من از شما دارم این داریم واردمون داستان میشین، میشین. آره، خوبه، وارد اومده. آره، داری میشین. من یک سال ازت دارم. شما اگه فردا بیکار بشید. مثلا آقا، بیکار، کس با کارت بخوابه چقدر زمان میبره تا کار ای رو مثلا چقدر زمان می‌بره نجات پیدا بکنید تا کار ای رو پیدا کنید. تا چقدر می‌تونید سرپا باستی؟ بر اساس پولی که تو بانک دارین، پول درختی، آره هر چیزی که دارین. که، به که هر سه ماه، چهار ماه، چهار سال. یعنی تا چهار ماه می‌شینی از پول بخوری، منظور من اینه. چهار میگنه، ولی خب سر راحت‌تر می‌تونی. تا چقدر ده. پول از پول بخوری؟ وقتی بیکار می‌شی. سه ماه، چهار ماه، اما یک آمد. سال نمی‌دونم. خب؟ تو خارج از کشور، مثلا آمریکا. اگر بیکار بشی، متوجه یک روز، چی یه هفته؟ یک روز، اینو رو چه دارم بهتون 24 ساعت. می‌دینه چرا؟ هر خریدی که اونا... انج... اونا ببین مثلا در... من خودم در مالزی یادم میاد شما زمانی که کار می‌کنی و حقوق داری این حقوق داری همه چی میتونید داشته باشی خونه، ماشین، همه چی من یادم میاد می‌خواستم ماشین بخرم خب؟ من حقوقم تو مالزی مثلا دوازه هزار رینگیت بود آره ثابت دي نكوره مثلا نه هیچ چیز رو تبدیل کرد هیچ ارزی رو تبدیل نکرد ها آره. اصلا تبدیل نکرد 12000 هزار 10000 لیر من بود من تا ماشین بخرم خب رفتم نوشکای ماشین کاتالوگ رو جلوی من گذاشت گفت خب چی می‌خوای من اون موقع یادم مثلا 2007 2008 بود یه هوندا سیویک انتخاب کردم خب رنگ سفید چی داریم؟ داریم؟ رنگ خب فیش حقوقی تو آخرین فیش حقوقی خودگیت با بورک پر می‌تواند. کپیش رو من بهت دادم. خوب قیمت ماشین بود ۱۰۰ هزار رینگیت. خوب گو ۵۰۰ هزار رینگی دان پیمنس میشه. یعنی پریک اولش بعد بدهی. گو ۵۰۰ هزار رینگی که رو بیاریت به بانک همونجا که به با بانک نیامد کارت کشیدم ۵۰۰ هزار کارت کشیدم. ماهی هزار رینگی تام تستش می‌شد. آسوب کنمش. آره. اتوماتیکا آسوب کنمش. هیچو یه فرمینو پر کردم، کپی و مدارک رو دادم، 5000 رینگیت دام پیمنت دادم، 48 ساعت بعد با من تماس تماس میگیره. 48 ساعت بعد با من تماس کردن، دقیقاً نصف 48 ساعت، دو روز بعد. گفتم ماشینو دارین میارین، کجا بیاریم بدیم؟ گفتم خونه هستم. آوردم ماشینو با پول تحویل دادن و رفتن. نمره شده همه چی. خب، خونه هرنی صورت بخرید بخرید. خونه رو ولی با بخاطر بخرید، بخرید، بعد خونه رو می‌بینید، خوشا دم دام پیمنت میدی، مثلا خونه تو فاس تو 600 700 هزار رینگیت حد اقل مثلا 20000 رینگیت 30000 رینگیت ازم دام پیمنت بعد قسط بندی میکنه آها مخلص کلام من حقوق میگرفتم 12 هزار رینگیت خونه داشتم ماشین داشتم خب بعد هر خریدی که بخواد بکنی کردیتی میخرید میکنه، کارت اعتباری میکشه قسطی خرید میکنه کامپیوتر چه میدونم لوازم خونه فرقی نمیکنه مثلا حقوق من بود 5 هزار رینگیت این کل این زندگی بود. و جا کل زندگی و تشکیلات کل زندگی و تشکیلات و ماهانه اوتومتیگی از حقوق من کس میشد من فکر میکردم همه چیز دارن ولی واقعیت امروز من هیچی نداشتم چون همهش مافه بانک بود من، اینو، این واقعیتی روزی که من تصمیم گرفتم برگردم ایران ظرف پونزده روز فقط چمدونام رو جمع کردم کل اون زندگی مندگی رام گذاشتم و اومدم چون همه اونا رو باید که اونها زبط میکرد دیگه متوجه تو اگر قسط بان کنده در میان زبط میکنند این واقعیتیه ما داریم میگیم که فشار رقابت در ایران پایینه در خارج از کشور خیلی بالاست زندگی در خارج از کشور خیلی سختی این سختی ها رو داره شما اگر یک روز بیکار بشی فقط این امروز صاحبکار دیگه از فردا نهی کل زندگی تو هم دست میده و تو قیابمون بشی ولی تو ایران حالا مال خودته ماشینت دیگه حداقل مال خودت هست دیگه متوجه اگه بیکار بشید ماشینری میری فروشی. چون تا یه مدتی زندگی تو کنی. ولی تو خارج از کشور هیچ کل مال تو نیست بیکار بشید درجه همه رو ازت میگیرن و اینجاست که فشار رقابت سخت میده. او اینجا که دغت تو آمریکا وق که تو کار میکنه دست دستو دلت میلرزه یدفه سابکار فرده به رو ا سر کار و در این حالت راندمان افراد خیلی بالاست کار میکنه. بهتر جدی دارم بهت کار میکنم تو به نیرونه انسانی زنگ بزنه تلفنشو جواب ندد خ مدیره زنگ بزنه تلفنشو جواب ندی نیشه همچی چیزی اسن امکانپذیر نیس چون میترسن میترسن بیکار بشن. حالا امیدوارم ایران هم یه روز اینجوری بشه ها <تصفيق> زیر فشار گرفتی پوینتو ما میگیم رقابت در خارج از کشور سنگینتر از رقابت در ایران ایران کار بنا یاره بیکارم بشه باباش پول میده اصلا آمریکا امریکا بیمهنیه مثلا پدره به پسر مثلا باله 18 ساله بخواد پول بده 18 سالشون که میشه بچه ها پدرماده یه میگه برو تو الان بهت خرچتو دادیم از الان به خود برو بساس این فرنگیشونه ولی تو ایرانی ها رو مثلا سی سال سی و یا پنج سال و بیکار میشه با از مثلا اگه درخواست پول بهش میده دید. یه جایی عبرتای اینو به دیگه تمام میشه بی بله سی سال برای بعد سی, سی, سی پنج سال بعد نمیشه تو تا سی، یا سال به به دولت به بانک و این اصلا زیرساختشون این اینجوریه و حالا اگه ایرانی ها که خارج از کشور زندگی میکنن یه ها میگه که مثلا میان وارد ایران میشن میگه ما زندگی داریم خونه داریم ماشین داریم همه اینا مال خودشون نیست مال بانک. یه واقعیتیه. ولی بله حالا در ایران ایران اگه یه خونه‌ای داشته باشی، اون خونه مال خودته، شرکت مال خودته، ماشینت مال خودته. اینکه با پول برسید مثلا پول زیاد هم داشته باشی، بانک داشته باشی میاد ازت می‌پرسن میگه پولا کجا آوردی؟ آره. میگن چجوری پول رو به آوردی؟ پولم اونجا چیزا. ببین پولم مثلا معنیه چون نرخ بانکی یک درصد، دو درصده اصلا پول تو تا نمیتونی بذاری مثلا من پول هم داشته باشه دردی نمیخور جانم؟ برش بصلا درصد در قیمت خونره یا ماشین داد اگه از این به نده کلشو میگیرن در جا هفتاد اش نمیدن چرا؟ بالانس میکنن ببین من نبا. من ماشین خریم دو هزار و هفت ده هزار رینگیت. خب. بعدی ماشین استفاده ما کردم دیگه بعد از 3 سال 4 سال می‌خواستم اونها استهلاک ماشین حساب می‌کنم ماشین بعد 4 سال یک قیمت روز اول نداره اون ماشین من مثلا شده بود بعد 4 سال 4 10000 پوند بعد مثل ایران هست که بعد 4 سال قیمت ماشین بره بالا آره بعد 4 سال ماشین شده 10000 رینگیت نمیدونم حساب کتاب ما کردیم اون موقع بالا پایین کردی من 800 پوند طلبکار شدم 700 800 پوند طلبکار شدم کلید ماشین رو دادم به برارم تو پارکینگ گفتم ور به فروش هصد میگهم خود بعدی حالی باش بکن میری چ دارم بهتون میگم اینجوری سیستم مثل اینجا است که تو ماشین خرره چهار سال پیش الان قبل بوش قیمت دو برابر می اینجاست که ما میگییم ف ر... به کانسپت فشار رقابت متوجه شدی فشار رقابت در خارج از کشور سنگینتر است از ایران مخلظه که تو ایران خیلی ساده است و خود خیلی ساده است. خیلی ساده از کار کردن، پول در آوردن، زندگی کردن خیلی خیلی خیلی ساده‌تر است از خارج از کشور. من همیشه میگم خارج از کشور به درد سقش میخوره واقعا به درد سقش می‌خوره. کسانی کسایی که می‌خوام مهاجرت کنم. قش اول، کسایی که از بچگی رفتن اونجا. اصلا اونجا متولد شدن یا یعنی از بچگی رفتن اونجا. خب؟ قش دوبار. قش این یعنی که بازنشسته است، پول داره. چون دادم 5-6 ملیارد پول تو بان گذاشته، هراش فرقی نمیکنه ایران زندگی کنه یا خارج از کشور زندگی کنه 6 ماه میره اونجا 6 ماه اینجاست قشن سوم افراد بیکار و بی آر را ناموفق ما بهشون میگیم یا تحصیل کرده، مثلا تحصیل کرده نیستن، تحصیلات بالایی ندار در ایران نمیتونه موفق باشه، هیچ عنوان منال هجوب من تو آمریکا زندگی می‌کنه 2000 دلار هزار دلار با دنیای زندگیش که با اون سیستمی که من خدمت شما گفتم یه چیزهایی که در ایران عمرن بتونه داشته باشه در خارج از ایران مثلا ماشین داره خونه داره می‌دونید لذتشو می‌بره اگه خارج از این ثقه شما هستید مهاجرت به خارج از کشور اشتباهی بزرگه اگه شما <تصفح> کار خوب در ایران داری زندگی خوب داری حالا درآمدی داری وقتی دا منم بگم برو خارج کشور زندگی اشتباه محضه بفرمایید گروه اول چرا بچه‌ها چرا دیگه اونجا بچه‌ها میره اونجا دیگه مثلا یارو سیستم اونجا رو می‌بینه آمریکاییه دیگه سیستم سیستمش ایشونه دیگه مثلا اونجا بزرگ شده دیگه مثلا ایران نمیتونه زندگی کنه خب پس فشار اوقات متزوجش بعد دامنه قیمت محصولات رقابتی دامنه قیمت محصولات رقابتی قیمت محصولات رقابتی دامنه قیمت محصولات رقابتی هر چقدر تر باشه، عدل بالاتر می‌گیره و هر چقدر بالاتر باشه، عدد عدل پایین‌تر می‌گیره. دقت کنید، توی کشور ایران دامنه قیمت محصولات رقابتی یعنی چقدر محصولات رقابتیه. به و که با خاطر رقابتی بودن، چقدر قیمت محصولات پایین‌تره. پایین و پایین‌تره. در اینو رقابت سنگینی سیستم قیمت محصولات بخواد رقابتی باشه. رقابتی اجراییه. پس هرکه هر جور قیمتی بخواد میبنده، می‌بنده پس دامنه قیمت محصولات رقابتی در ایران بالاست متوجه هستید، یا استیبل نیست، یا ثابت نیست پس در نتیجه عدد پایین‌تری رو کرد. خب این چه بودی بود؟ بود محیط بیرونی درسته تو چه محلفه می اونجا بود محیط بیرونی؟ یگرگ منفی خب تغییرات تکنولوژیکی اگه منفی, منفی یک باشه بهترینه و منفی چش؟ بدترینه تغییرات تکنولوژیکی در ایران بالاست متوجه هستی پس عدد منفی دو تو تری رو میگیره تغییرات تکنولوژیکی وقتی بالا باشه بده برای سازما خوب نیستش تغییرات تکنولوژیش آره عدد پوینت منفی چهار یا منفی 5 من بهش میدم نرخ تورم در ایران بالاست منفی 6 ما میدیم تغییر پذیری تقاضا در ایران بالاست منفی پنج و منفی 6 منفی پنج میدیم موانع ورود بازار در ایران ساده است متوجه هستی پس عدد رو میدیم منفیه مثلا پنج من میدم فشار رقابتی در ایران فشار رقابتی خالص فشار رقابتی اگر پایین باشه عدد بالاتر رو میگیره منفی 2 منفی دو مثلا خب؟ دامنه قیمت مسالات رقابتی هم عین فشار رقابتی میگه که اونم منفی دو رو به خودش میگیره عدد چقدر شد اوریج منفی چهار تو بازار ایران خب سخت کلن جالب نیست کسب و کار در ایران جالب نیست خب از منفی 6 شده گرفت منفی 4 دو اسپیس من و خدمت شما گفتم اسپیس خدمت شما گفتم این مؤلفه چی بود ایکس موفات موج مازیات به نگاه کن نگاه کن با سرعت از سرعت خ اکس مرفی چی بود؟ مذیت رقابتی ربابت. رقابتی وای مثبت چی بود؟ اس مالی. مالی مالی وای مرفی؟ سوبات. دقت بکنید دقت کنید جذابیت صنعت. متواچه و مازیات رقابتی رو مؤلفه x مانیتور دقت بکنید جذابیت سند چه عددی گرفت عدد 3 و 25 خب مازیات رقابتی چه عددی گرفت منفی 2 و 85 جمع این دو تا عدد این دو تا عدد رو با هم جمع می‌کنیم تا برید تو مؤلفه x کجا قرار می‌گیری جمع این دو تا عدد چقدر میشه 3 دهم خم؟ چهار حالا پودو به چارده. اینجا مثلا درسته؟ اینجا مثلا ها؟ درسته؟ بریم روای روای چی بود؟ financial بود؟ درسته؟ بوده مالی و صبات محیطی بود درسته؟ اه. بوده مالیمون چقدر شد؟ سه و بیس پنج صحبت محید کیمون چقدر شد؟ منفیه؟ چار, چار. مجموع این دوتا چقدر میشه؟ منفیه؟ هفته هم. پس اینجا میام درسته؟ منفیه؟ هفته هم. درسته؟ درسته؟ وضعیت شرکت ما اینجاست تو این مویده خب؟ ما همین کارانو میکنیم این چپیستان رو پر میکنیم که ببینیم اینجا میفتیم اینجا میفتیم اینجا میفتیم یا اینجا میفتیم گرفتی تا اینجا داستانم آره؟ حالا من تا آخر آخره متعجی نشده که شما مدید این سوت رو با هم این معادله ای وای رو با هر دو تا رو با هم جمع کردی یه عددی رسید بله بله مثبت منفیش با هم جمع بله بله برید دقت هارو اسکرین دبیاته اکسل ثبات سنج جذابیت صنعت دارید و مزیت رقابتی هر عددی که هر کدومش گرف گرفت جذابیت ثلث گرفت تو 3 و 25 مزیت رقابتی گرفت تو منفی 2 و 80 این دو تا رو با هم جمع می‌کنی می‌رسی به یه عددی مم. عددی X می‌رسی رو X که داره اون یکی منفی هفته حالا نهی کنیم <تصفيق> چه منفی هفته اونجا پردش؟ به خاطر اینکه اینجا وای مثبت، این وای منفی منفی این قسمت میاد ببینید این صفره خوب. سمت راست که می‌رین مثبت، سمت چپ می‌رین منفیه بالا که میایی، مثبت پایین که میایی منفی محیط شماره شیش موشه. تو تو قسمت منفی میفتن دقت بکنید، نکته اگر شما تو این محیط بیافتید، محیط شماره یک محیط شماره یک و چی نگرد؟ محیط ارسیو یا محیط رشد یا تهاجمی تو توی موقع یک بیافتید استراتیجی که باید اتخاظ کنیم رو نوشته شده دقیق کنید Backward, Forward, Horizontal Integration یعنی استراتیجی ها یک پارچگیه عمودی روبه اقب، روبه جلو و استراتیجی یک پارچگی و افقی رو باید اتخاظ کنید خب؟ Market Penetration، رسوخ در بازار Market Development، توسعه بازار Product Development، توسعه محصول و Diversification هنگل یا نهنگل یعنی استراتیجی که اتخاذ میکنی رو اگه تو این محیط بیفتی مشخصه این استراتژی رو بعد ابتخواه کنی خیلی ساده ببین خیلی ساده پرست از سوات اینجا فقط مشخص محیطی تو چه محیطی میاخته تو هر محیط که بیافتی استراتژی مشخصه رسد این واسه گفتیم می‌گنم و می‌دستو فارس شو گفتن دیگه روش یک پارچگی عموده می‌گنم یادداشت کنیم، الان, الان, الان, الان محیط یک بیفتید درسته درسته؟ استراتژیا که انتخابست میکنید چیه؟ یادداشت کنید یک پارچگی عمودی روبه رو به رو رو رو جلو و یک پارچگی رو افوپی درسته؟ دو یک پاچگی عمودی رو به عقب، رو به جلو و یک پاچگی افقی. استراتژی دو رسوخ در بازار. 3: توسعه بازار. چهار توسعه محصول. 3: توسعه بازار، توسعه بازا. توسع محصول. تنب و پذیری همگن یا نا همگن چهار این؟ بله. پنج پنجه تنب پذیری همگن شو... توسعه مخصولی محقه این ترکیب اولویت چه همینجه نه مهم نیستش میگم میگرد یعنی تو این محیط که شما بیوفتید از این استراتژی استفاده میکن بس این استراتژی ها یکتون پنج تنب و پذیری همگن تنب و پذیری همگن و غیر همگن ببینید پس اگر تو محیط یک بیافتی که محیط تهاجمی استراتژی که اتخاظ میکنید یک پارچگی عمودی رو به عقب، رو به جلو و افقی خب روسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول و تنظر پذیری همگن و غیر همگن درسته؟ ببین خیلی راحتر از سواته تو تو سوات بعد دارید سوات در بیارید تو زیر ماترس چی؟ بعد اینجا تو توز داستان داره خطیه، با قول محلوبی یه چکلیس مشخصه اگه توی این محیط بیفتی محیط دو محیط دو، محیط رقابتیه خب، رقابتی اگه تو این محیط بیفتی استراتژی که اتخاذ میکنی چیه؟ استراتژی که اتخاذ میکنی چیه؟ یک پارچگی عمودی روبه عقب، روبه جلو و افقی یک پارچگی رو عقب، رو جلو و افقی. رو به عقب، جلو و افقی. رسوخ سخت سو... تو سو... بازار، توسعه بازار، توسعه محصول. رسوخ در بازار توسعه بازار و توسعه محصولی جه قد تو این محیط بیافته سراغ تنر پذیری نمک داریم برقسی سه عرض تو این محیط افتادی اصلا شما می بینیم؟ پذیری نداریم رسوف در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول اوکی؟ اگه محیط سه افتادی، این محیط، محیط محافظ کارانه محیط محافظ کارانه استراتیجایی که اتخاف میکنیم رسوخ در بازار توسعه بازار توسعه محصول، و تنب و برسته؟ چهار چی بود؟ اگه تو این محیطه رسوخ در بازار توسعه بازار توسعه محصول پذیری همگن چهار تنقاپذیری همگن جا همگن نه دیگه اینجا و اگه تو این محیط پیافتی؟ محیط چهار متوجه محیط چهار چیه؟ محیط تدافعی یا کاهش استراتژی هر که اتخاذ میکنیم کاهش برون سپاری انحلال کاهش برون سپاری و انحلال سه استراتیجی انهلاکی یعنی اینگی باشی کلتی شد آره دیگه اینجا بودم بودم بودم ماستان بیزم ما چی شد؟ آره تموم ابزار اسپیس تموم یعنی بر اساس این که شما تو چه محیطی рیفتی بود ماشخص به، فقط تو چه محیطی میفتی بر اساس اون چهارتر چکلیست بر... همین اسپیس هم بر اساس چهارتر چکلیست مشخص که تو چه تو چه محیطی میفتی تو هم ویطی که افته ده ا資راتژا محیطی چه استراتژی باید رو غیت گرفتی دئت اسپیس شیفی، این هم دو گمه میشه چند تا دیگه از سرش؟ سر گمه این دیو با سریندی با سوات کار نبرید آده، آده، از رو آقا، سواد مهمه. برای این نموان یه ابزار ابزاره یه هست برای تدبیلی استراتیجی خیرتی شده های برای نیست خب ابزار سر گمه بله تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک یا برنامه‌ریزی استراتژی کلان شرکتی استراتژی های ماتریس گرند یه استراتژی های گرنده yes, right. جواب می‌پذیریم. توست بیشتر اونی میگی که آماده‌ایم یا نیستیم. آره. باحاله بکن آره. اما در کلاس میگردی. تو سرگیری داشت اولش. حالا چیست؟ اولش کنایه‌اش. وای. اول داداش. کی داداش؟